بله اینطوریه الان خدمتتون عرض میکنم یک نکاتی در پس این وجود داره ولی اون سوء که شما میگید وجود نداره اما در کل این سؤال پا باورجاست چرا در رسول اکرم این همه اذیت میشد اگه لحن آیات مکی مهربانان است این دیگه بماند به عنوان مثال نقصی یا یک سوال نقص که این استدلال رو نقض بکنه این دیگه در ذهنتون باشه اما برادر جان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 شرابخاری کرده مثلا اول باید ایمان شکل بگیره اول باید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از... یعنی اون شناج ایمانی رو باید شکل میداد. داد بعدن روی اون شناج ساختمون ایجاد می کردن این دیگه کاملا حکیمانه است و مطمئن باشید برادر اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همون ابتدا همون یعنی قدرتی که در مدینه داشت در مدینه نداشت همون ابتدا اون کارهایی که در مدینه انجام میداد رو میومد در مکه انجام میداد دیگه رسالت اسلام رسالت توحید در بین گرد و خاک گم میشد مثلا تصور بکنید وقتی که یاسر و سمیه رو شکنجه میدادن رسول اکرم مگه اونها رو نمیدید مگه جلوی چش رسول اکرم نبود چی میفرمود رسول اکرم صبر یا آل یاسر این نموعید و کجن نه صبر داشته باشین ای خاندان یاسر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 اون بیخیرادیه، آیه اسلامی که این همه یعنی عظمت داره، میاد بیخردی بی خرج میده و میره در مد... در مکی که نه قدرتی داشتن، تعداد مسلمان ها از ابتدای یک رقمی بود، بعدا دو رقمی بود. خیلی کم بود، بعدن مثلا سه رقمی، چهار رقمی ها الان که به میلیارد رسیده. یعنی این افراد انتظار دارن که اسلام اونقدر بیخرد باشه، اونقدر بی حکمت باشه، در وقتی که توانایی نداره بیاد مثلا بجنگه. توانایی نداشته اسلام رسول اکرم توانایی نداشته حالا این سوای این مباحث است که حتما با روشناج ایمانی شکل بگیره لذا این افراد به این جزئیات توجه هم بازم برمیگردن به همون ماجرای فتح مکه که میگن لحن آیات فلان بود در زمان فتح مکه در اوج قدرت بودنیانه رسول اکرم در اوج قدرت خودشون بودن خب چرا در اوج قدرت عفو عمومی صادر کرده؟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 میان تحویل این افراد میدن و میگن باشه ما این عقیدی که چندین ساله بر اون بودیم نماز روزی انجام دادیم این دو دستی تقدیم شما ما از امروز دیگه مسلمان بودن رو کنار میگذاریم و نه برای دیگه چه منطقیه کسی که به صورت یک طرف مطالعه بکنه و نیاد این مسائل رو نبینه گیه تا اینجا کافیه برادر جان با سوال اگر سوال دیگری باشه وگر نه انشاءالله خداحافظی بکنه. بسیار ممنون سوالات ما به پایان رسیدن واقعا خیلی عالی بودن